خدایا مگه نمیگی هیچ زمانی واسه توبه دیر میست دیدی توبه کردم همین جا وسط همین نمکزار برگشتم ولی چرا دیر بود؟ نه حلیمه بود نه مرتزام یان مصلحت میگی مصلحت چش چرت ولی رومن چقدر حساب کردی رو بنیام من بنیاشو ندارم بنیه ندیدن حلیمه رو ندارم بنیه ندیدن مرتضامون ندارم یا پرش گردم یا بونیه ایت به هم بده ارو گچون کجونی؟ زانو بچه‌م کجاست؟ این خونه دو تا در داشت. میدونم خونه داشت میدونی. میدونی گذاشتی مرغ از قفس بپره. زانو داشی سنتو مغم هستی که. آبابو. خود گویی یا خود خندی؟ اجازه ماردم مندی دوستش دارم با آقام قصم دوستش دارم با آقام قصم بچه به اونه هست دنیا یه نفره هست برام فقط مهتب اصلا تو غلط کردی تحدیدش کردی ترسوندش حالا چه میتونه ذهنشو پاکنه از من از تو من خرکیم خانداش شما مهمی خالی دیگه من مهم الان به فرا رفتم اون از داداشم این از مالا انوالم اینم از زنم معو میستیم وقت ش کجاست؟ خونه باباش؟ نه اونجا نمیده اونجا نمیره فرار کرده فرار کرده من از من فرار کرده سعنگ زدم بدونی حالی که مربات از زنش خبر داشته باشه زنم باز از مردش خبر داشته باشه زنت کجاست؟ پیش ما؟ من کجا خونه کری با آب جنگ. با بچه هم گفتم بدونی کجاست؟ اما نمیای سراغش بیای عین و دیوار جلود بایست دم چون ضعیب کشی چون نامردی مرد که نبود به چه زونه هر وقت مرد شدی میای سراغ زنت تمام کیه بوده چه گفت؟ چرا بهت بگم چی گفت؟ میبرمت پیش اونی که گفت بریم ساحب این خونه منم پس خودم درگاه می کنم بله ببخش کجا؟ جنبوستا. گفتی هر موقع مرد شدی بیا حالا مرد شدم دوی دار و ندارم حزینه یه حلالیت شما تا قلب زنم آروم بشو تا بار روش با من خوش بشه من زور نبودن تو ندارم زور قهرت هم ندارم جونشو ندارم میبینی خودم خواهر و خفیف کردم جوله همه چیزایی که نمیت میگفتم و گفتم چیزایی که به تو خلوت بهت میگفتم هلی لوکر تو پا میذاری تو خلبتم که من نتی تو بگزم همه دنیا یه طرف تو یه طرف مهدا عشق همسر فقط برگرد مهدا من بیتون میگندم چه آباش بیجا میکنده حالا تو میدون را و را تا پرسته ادراو یفتم گناه نکرده گردن گرفتی واسه خاطر این که خاله رو نجات بدی واسه خاطر این عشقت رو نجات بدی خواهد تو خوار رو ذلیل کردی واسه خاطر دلت واسه خاطر عشقت حالا من چیم کمتر از توی که واسه خاطر عشقم خوار و خفیف نشم واسه خاطر زن زندگیم واسه خاطر مادر بچه هم. فقط یه حلالیت و صدای بلند که زنم بشنبه حلال <تصفيق> جونت ماجه در حجور رو همه بازه اینلا en oh, selle Kas see on hea, eks? Ei. Kas see seda Aisollama, kib mis다가 teia ja? scohba sem해서 dah aga студan. Lidsali berام Jais pun Kõik. Sure. قرون دستت شجوری هست آنه میکشی کناه یکی دیگه ارتون نزنن اون یکی دیگه یعنی صد دالا شده بعد شم حس کردی من ایزی افتاده به جونتون تو پیمو منو چاباش تو پیمو شد همین دیگه همش میگه منو چاباش آرازت قلم انداختین خط کشیدین روش این گهنی مریضی دایی حالا هم که دوبله فامیلتون دومادتونه بخار رب سمت داداشت که بیاده بیکنن پشن ببین درفه پیش بهت گفتم زعیف کشی بکنی زعیف کشت نکنم آخوا باشتم نیست پس پشن لال شو و گوشگام تا این جایی بزرگتریت کار میکنم هم بر بخوره قاطی میکنم خواه با لیوان یه پارچ آب یخ بمونده اونجا شر شده میگه آب یخ بردارم بیارم آراز باستی چی اومده بود نیدون حسابشو خان داشت بسته ما یا دو ماله عرفه سک پاچه از قصاب خانه بزن زه نون خودشه بریده بل, بل نسبت خان داشت نسبت نداره هرکی نون بری کرد نونش بریده میشه باسته هم میبشه حساب که تا معلومه این مردم خورده حالا آورده پس داده این که دیگه عربده کشی و گردن کلفتی نداره داری بس برادری شی بشه؟ واقع بگه برادریه کل هم واقعیت فدای سر چاباش آنه بزار باس بادوه همینه چی جنبشه داره تا این نیدون بهش کار بده من دیونم نکن داری جده دنبال شهره نه؟ باشی؟ با من از شهر هفت هم خودم زخب خورده شهرم زخب خورده خانواده از دست دادم خانواده میدونی چیه بشی خانواده یعنی اصلا نصر بچه یعنی همه چیز آرده من نمیذارم بچه بیخوی خوهرم بیفتم به جون هم ازم بپچم با حال خرمگس مرکه را بیخ میکنم بخوا را که کرد این که تمام کرد مثلا همیشه ورد زبان شماست خونده داشت این سویی جا مونده بود گوشه جیبم گفتم حالا که قرار به گرفتنه بهتر چیزی جا نموند خوبی من اینه که پوست و گوش راست و خون و رگ و خون و لباس و خیلی چیزم از شماست شما یادم نمیده تا باشه اینجور تنبیه شده نه در خداییش تهش حالت خوب نیست که دیگه حق و ناس گردن آقا نونیست حق و ناس باره نه میخوامن صفر شروع کنم میخوامن صف شروع کنم دادش صد بودن شما رو به نمی کنم آراز شما سختی شما نون خونه با در دادی شما به یاد دادی اون خونه رو بدن حتی با پادایی روز بیام اینجا پاده هر حجره یه می کنم تا صبح به صبح نزدیکی شما باشم از ما هنیف وقت شمیارد نشه هم بیام ببینم امروز روزم هست تا شما دوباره نگام کنی یا نه و الله قسم انقدر میرم و میام تا یه روز باز تو کوچه منم عروسی بیاد منم و حبیب میستم بزنم به چاک گمشم محفشم تو کوچیکی شما تو داشی شما پاروتر از این حرفان باش نگام نگم بدایی سر خودت تو بچه تو را هست بدایی تارموت خونده باشی چرا کفش پاش نبود؟ لیلا گفت حسابشون بستی بستی؟ ببین من اینجور دونگ داشتن رو نمیخوام ببین منو دکتر شاید یه طبیع چیزی داشته و چی چه کار داری با خودت؟ طردش کردی و تو به کارو کاسه بید برست خامستان کتاب اینجا بیاد دستت نوکن اینجا من تعیین می کنم که موز بفرش که خورمالو چه فصلی چه قیمتی بیاراز ولی نمی چسبه نسیه میگیرم ننسیه میدم شواره آبچیمه پیرون بی جابی مکان بی پول که نمیشه که حالا دیگه تو همه چه شریکه دیگه اینجا میوه نمیمونه این نمیموند الان همش میمونه میگنده بعد گرونیا مردم که قدرت خرید ندارم داداشت نداره من و داداشم من و داداشم به تو ربطی نداریم الان کدشی برش گریه میکردی من برای بقونم گریه کردم وقتی مرد برش گریه کردم خدا بیا مرد مرد که براش گریه کرد آراز هم برای من مرده بر همین براش گریه کردم توی این میدون کسی بر آراز کار نمیده داد اون کیته منزینتو میگیری دستت اتا توکل گفتم فهر فرازوت فدوت وقتی آقا مرد برش گریه کردم وقتی ماده هم هم مرد برش گریه کردم تو هم دیدی که برای آراز گریه کردم من نیفرمم دادن مال مردم اینقدر زور داره که داده شد باید برات بمیره داشتم باید خورد وقتی پشت به پشتش رو آداد آره به چیزایی که میخواستی رسید نه میگه اخون ناس باره با باره کرد رو دو شاخوان برداشته شمایی نه نمیجروره والده یه خوب آره آره پول درار فسولی هم نکن شریک باش گوش بینید اصاب کتابیانا آره آره همه چی روحال شد ما هم به حق آقامون رسیدیم ولی ولی چرا خوشحال نیستیم چاباش آراز پای ما بایی ساد من چیم کمتر از اونو که پاشوای نیستم märgutüs. Leilaçi. U on märgut Alors pas dois Maha, seda ma. O see ei ole vangu, چرا با شویر برمید آراز کجا یه گم بگو شدی؟ چی بخواه الان دیگه وقتی اینه که من پاس بایستم بهش گفتم احل تکخاری نیستم به چابوش از چاوش چابوش خان آقا چابوش خاندادش آرازه دیگه نه؟ درازت کرده به خاک نشوندتت احضیتش نکنه همه چی تو ازت گرفته من اینجوری آب از اون پایین نمیره آراز آراز پس لیلا چی؟ خونه بابش نبود بپوشه بخاره مبسل تو خونه تو هم نباشه بخاره بپوشه مبسل چابو چند بری باید بگیره آقا بسر او حتی به حمیفم راه نکرده گفته با زنه هفته تو دراک بدید به داشتن راضی نیستم چرا این یوری نگاه میکنی به بردرت؟ چوری نگاه نکردی که آقا؟ ستار؟ بالا پایین زیاد پریده برای حق و سحمه این حجره آلا غلطم رفته چه کت چابوش گرفته نمیدونم پشتش را رفته سر آوروی من احمال کرده آبا از این کارا اما حالا که سه دونگ در اختیارشه کجاست اینجاست چرا؟ چون حالش سر مردی و نامردی بده پس اینجوری نگاه کردن بهش انصاف نیست بابا جون با باشنم بزیش سلام آقا جام. سلام علیکم <تصفيق> سلام باست چاوشم عبر تو هم میکشی وقتی آراز آواره کرده در مصطبه بشیم کشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گفت می <تصفيق> گفت: دوست دارم چاوش به تو بره کریم بوستا آتفه به مادرش حالا ببینم تو به مادر ازدفتی؟ یا بابا داره محال داشته؟ برو کرار بابا جم وزه بیام تو برو روس دوست نداشت مردا سر کوچه باستن هرتک هرتک کنن یا زنا دورا همجم چند تو کوچه سبتی پاک کنن و از این هرپا میگفت تلعت اینجوری نیست آتفارم یاد میده اینجوری نباش آدم بگم چی میگف تو حالا شبیه مامالتی سبزیمو تو خونم پاک میکنم بایی شیر شیب بز مال بزقاله است غیر اینه اون سدونک حقم بوده آراز دوید حق به حق برسه حالا باید تو اون پس بده مبارکه به حقتون رسیدین آراز پای حق و ناس باباتوست اگه آه نکشیده بودی که الان بابامون دنیا زیر حق و ناس لح نمیشد آه نکشیده بود. <تصحیح> زنم چیه بچم چی؟ ندم چی؟ همه به هم رب داریم وقتی زیر یه سخفیم و نداری درد میکشیم از کجا ملومون آه نکشیدن ها؟ از کجا ملومون را حلال کرده بودن آراز حقو حق و به حقدار رسوند حالا حقش آوارگی و بیپل و پل شدنه حالا حقش داماد بیال و شدن آره؟ حقش؟ اگه مادری زنده بود آراز دیشب کجا سرش زمین میذاشت پس بدری حق داشت میگفت کاش عاطفه به مادرش نکشه پس کجا معلوم نکشیدم دیشب آراز سرش کجا زنی گذاشت؟ دیدی. پس به مادر نگشت حالا من اگه از حقم بگم موضوع حل برادریشون حل تمومه تاور به هم خورد آقا کریم بوستان نه ماست بالا مونده نه دوغ پایین ستون که هیچی کل دنیا رام بدی بره حل نمیشه خب پس یه تکونی بخور پونزه ساله داری ناخون به هم میزنی دست به کشت ناخون به هم تزنید یه تلاشی بکنید دوتا داداشو دوباره به هم برسونید دادا قم آراز رو داری؟ خیلی خوب رو دارم همه پس قمه لیلا رو داری خولی همچه قم دختر ما ها؟ تو خولی کاش باش قمه آراز رو بخور رفته میلون کفششم درورده به در چاوش پر کرده تو میدون که هیچکی نباید به آراز شما بده حساباشو بسه حسابا به نام چاوشه پس حساب هیچگی رو نبسه خب این هم نجابتشه که حساب کتابشو سپرده دست دادش اعتماده حالا این اعتماد جوابم داده تا به حصبش ها گفتن یابون اونوشو بسته نرهای پس نرهای پیش آدمه حلش میکنی یا حلش کنم آراز کجاست که آباره نیست فقط این نیدیم چجوری میخوای حلش کنی؟ آرازو میشونم تو سه دونگ خودم هنجزه نگیش رو دره رکار کن آها پس باعرزوز میرسی و بلخری یکی ادادش هم شاگردت میشه شاگردم میشه؟ تو فکر کردی من کیم عقده این حرفا رو دارم آره؟ تو فکر کردی من سر پیوی میشینم ریختن آجر آجر زندگی بچه های بردی رو کنم؟ فکر میکن این مهم برام فقط رسیدن به حقم بوده کریم رو اینجوری دیدی؟ دایی توکل برای شو شغل جور میکنه <تصح> دایی توکل؟ <طبکل. تصح> چابوش خان یه نبری میخواد دذاره بیخ گوشه آقای توکل از آدار ریش تپید کرده بله خیلی الان درد شغل نداشتن آرازه؟ من با یه تیر دونشون میزنم به آراز شغل میدم میشونمش تو دنگ خودم میشونه کار کنه خرجی زدکیش ذره دون دون چشه هاشون رو نخو کنن آخرش چش تو چشم همه خونه نیکشه به طرف سور نیکشه به طرف برادری این میشه نشون دوم اومدم ده بگم من دارم میدوم که 24 ساعت این دو تا داداش میهم نمونن تو هم بدو به شایین مادرت چاواشه چجوره میخوانی رازی کنین که قبول کنه چیه چه خماره میخوام تینه بکشن سدونگم رو جدا کنم. کاری به کار دعاشم نداشته باش من کار به کارش دارم این زندگی منم هست نه داشتم نداشتم این چون رومانم تأثیر میذاره نه تموم تموم به سلامت تختم کار میکنیم با, با پای طاق من با این میسه تو پای حجرایی بابات. نخواست دوست جووب سر نخواست دواز, جو سر دواز اون دیوار وسط حجرایی که کشیدی درست بود یا غلط؟ بر چی که این آدما جداایی نده جا غلط سر نخواست هم دوست. تا میدان؟ با تو آرامم بی ترس از تنهایی تنها میمانم آشغتر زخمیتر آرا چون آتش در زیره، O šufte Zachmas bag